ارز کردن که برای جبران گناهان گذشته به نحوه احسند که تبدیل به حسنه شوند و در لوح قلب انسان محو شود آیا استغفار کافیست؟ چه دستوری میفرمه؟ استغفار خیلی موثره ولی عمل صالح موثرتر، تره این نه حسنات وقتی انسان یه اشتباهی میکنه دیگه وقتی تکرار نمیکنه کارای خوب انجام میده کارای خوب مثل آب زلال و هراوانیه که آلودگی رو میبره آن رو میبره حالا <تصفيق>